أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تغسيه مولانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين اتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أليا محافظا مقائدا مناصرا ودلينا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوبة بحمد الله بإناياته أغا زمان عليه السلام بحث آیاتی که به اون آیات در وحدت شخصی وجود تمسک شده بود رو ترک کردیم و نقد اون استدلالات رو به همدلله بیان کردیم مطلب دیگری که در ادله نقلیه وحدت شخصی وجود اون حائز اهمیت هست و قائلین به وحدت وجود و وحدت شخصی وجود به اون تمسک کردند اده از روایات هست که خواستن از اون دسته از روایات وحدت شخصی وجود رو استفاده بکنن که انشاءالله باید به این روایات و این استدلالات و بررسی اونها الله بپردازیم قبل از اینکه ما به این استدلالات بپردازیم به اونها رو مورد بررسی و نقد انشاء الله قرار بدهیم لازم است که بگوییم که در روایات اهل بیت اسمت و تهارت با صراحت بسیار زیاد و به صورت واضح وحدت شخصی وجود رد شده و اون رو با و توحید اسلامی معرفی کردند و از این دست روایات کاملا نظر اهل بیت اسمت و تارت در این زمینه معلوم می شود و با سراحت مرز بین ایمان و کفر و توحید و شرک بیان می شود که ما مختصرا به بعضی از این روایات الله قبل از ورود به بررسی اون روایات مورد استدلال انشاءالله الله پردازیم یک دست از روایات است که خداوند متعال رو خالی از خلقش میداند داند و خلقش رو خالی از خداوند متعال این روایت شریف رو مرحوم کورینی در کافی این رو ذکر کردن با و اطلاق و القول و شیء حدیث شماره چهار که در کتاب توحید این رو ذکر کردن که مرحوم شیخ صدوق هم در توحید خودشون با سند دیگری این حدیث رو ذکر کرده هم عدتون من اصحاب نان احمد بن محمد بن خالد البرقی ان ابی ان نظر بن سووید ان یحیل حلبی ان ابن مسکان ان زرارت ابن اعین که سند سند خوبیست و مشتمل بر سقاط هست قال سمیعت و عبد عبدالله علیه السلام جناب زراره میفرماید که من از آقای امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت می‌فرمودند یقول این عبارات رو می‌فرمودند ان الله خلون من خلقه خداوند متعال از خلق خودش خالی هست و خلقهو خلون من و خلق خداوند متعال از خداوند متعال خالی هست هم خداوند متعال از خلقش خالی هست و هم خلق خداوند متعال از خداوند متعال خالی هست و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلق الله و هو مخلوق هر چیزی غیر از خداوند متعال اسم شیء بر اون اطلاق بشود چیزی باشد هر چیزی غیر از خداوند متعال که یعنی ما چیز رو نسبت به خداوند متعال بگوییم نسبت شیع چیز بودن رو به خداوند متعال بگوییم که چیزی هست که خدا هست این صحیح است اما غیر از خدا هر چیزی باشد اون مخلوق است و الله خالق و کل خداوند متعال خالق همه چیز هست تبارک اللذی لیسه که مثلی و هو سمیع البصیر که حوایات دیگری هم با این عبارات و با این مضمون وارد شده خب خیلی روشن است که طبق وحدت شخصی وجود نه خداوند متعال از خلقش خالی هست که پس شد که خلق خداوند متعال از همین وجود خداوند متعال آفریده شده اند و اینها وجودشون همون وجود خداوند متعال هست که یک مقام سقع روبوبی است که در اونجا هیچ تعیونی وجود ندارد و خلق خدا در اونجا راه ندارند در مراتب پایینتر و مراتب خلقی که همون وجود خداست که تنزل پیدا کرده است نفس رحمانی خب اونها همین وجود قالب مخلوقات درآمده و مخلوقات پدید آمده که مخلوقات همان وجود خداوند متعال هستند و از خداوند متعال هستند لذا خداوند که جامعه همه اینها هست در برگیرنده همه اینها هست طبعاً طبق وحدت شخصی وجود نمیشود گفت که خداوند متعال از مخلوقاتش خالی هست نه بلکه همه مخلوقات در خداوند متعال قرار اند و وجودشون وجود خداست و به تعبیر آمیانه و سادتر قسمتی از وجود خدا وجود مخلوقات هست و همینطور طبق وحد شخصی وجود صحیح نیست که ما بگوییم مخلوقات خالی از خداوند متعال هستند چطور می شود این رو گفت در حالی که طبق مبنای وحدت شخصی وجود اصلا وجود مخلوقات وجود خداوند متعال هست یک وجود هست که همون وجود خداوند متعال هست و این مخلوقات همون تقیدات و تکثرات و تعینات وجود خداوند متعال هستند لذا اونها هم از خداوند متعال خالی نیستند بلکه تماماً خود وجود خداوند متعال هستند لذا خب خیلی روشن است که طبق وحدت شخصی وجود این کلام غلط است و نمی شود گفت خداوند متعال خلوا من خلقه و خلق خدا هم خلوا من لذا از این بیان وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام بر روایات دیگری که این معنا رو بیان می کاملا به صورت واضح و با سراحت نفی وحدت شخصی وجود بطلان اون استفاده می شود دسته دوم روایاتی است که بینونت خداوند متعال با خلقش رو بیان می کند که اینها حقیقتا متباین هستند خلق خدا با خداوند متعال متباین هست و روایات فرامونی حتی در این مضمون بیان شده که ما فقط در صرف اسم گاهی اوقات حتی در بعضی صفات فقط در صرف اسم با خداوند متعال مشترک هستیم و حتی اینی که ما میگوییم خداوند متعال علیم است خداوند متعال زمینه است و چه بسا علم و سمع رو به مخلوقات هم نسبت میدهیم اینها فقط اشتراک در اسم دارند که به بعضی از این روایات در بحثهای گذشته اشاره شد لذا بینونت و مباینت تام بین خداوند و خلقش وجود دارد ان که همین مرحوم کلینی ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان يعقوب ابن يزيد ان ابن ابي ان ابن وزينه که سنده این روایت هم سنده بسیار خوبی است که مشتمل بر ثقات است و مشتمل بر اجل الله است ان ابي عبد الله علیه السلام فی قوله تعالا از امام صادق علیه السلام جناب ابن وزینه در مورد این قول خداوند متعال نقل که ما یکون من نجوا سلاستن الله و رابعهم ولا خمسه الا الله و هم در هیچ نجوای سه نفره نیست مگر اینکه خداوند متعال چهارمین هست و هیچ نجوای پنج نفره ای نیست مگر اینکه خداوند متعال ششمین هست فقال هو واحد واحدی الذات خداوند متعال هم خودش واحد است که در معنای واحد مفصل توضیح داده شد و روایات خونده شد هم به حسب ذاتش واحد و بسیط هست به هیچ نحوه به نحوه مطلق تعدد و تکسری در ذات الهی راه ندارد نه در مقام خود ذات نه در مقام به قول این آقایون تعیینات خلقی به هیچ نحوه ادابند متعال تعدد و تکسری ندارد حضرت می که فقال هوا واحد و واحدی و ذات با من خلقه خداوند متعال از خلق خودش جدا هست بینونت دارد با خلق خودش مباینت دارد با خلق خودش و به وصف نفسهو خود خدا هم و نفس خودش رو اینگونه وصف کرده است که این سریع هست در این که خداوند متعال کاملا جداست و هیچ ارتباطی از حیث وجودی بین خدا و خلق اینکه وجودها با همدیگر یکی باشند وجود ندارد و هوا به کل شیعن محیطن به الاشراق و الاحاته و القدره خداوند متعال به هر چیزی محیط هست اما نه محیط این که خود مثلا یک فضایی رو در نظر بگیریم که چیزی در این فضا قرار گرفته مثل دستمون رو در نظر بگیریم که چیزی درون دست ما قرار گرفته باشد که خود این وجود مثلا محیط هست به یک چیز دیگری نه انغولا نیست و هو با کل شیء بل اشراف یعنی خداوند مطال به همه چیز اشراف دارد و الاحاطه و قدره احاطه دارد قدرت خداوند متعال همه چیز رو در بر گرفته است چیزی از تحت ید قدرت الهی خارج نیست و با کل شیء بل اشراف و احاطه این خداوند متعال دارد همه چیز از تحت زیر نظر الهی هستند از نظر الهی چیزی خارج نیست و بالقدره لا يعزب با عنه بعد دوباره برای اینکه باز دوباره هیچ شبهی نماند حضرت با عبارات دیگری دوباره معنا میکند لا يعزب عنهم اسقال ذرهن فی و لا فی العز هیچ چیزی از خداوند مطال پوشیده نیست زرهی چه نه در آسمان ها نه در زمین ولا اسخر و منزالک نه کوچکتر از این ذره، ولا اکبر و نه بزرگتر باز حضرت دوباره تاکید میکنن البته به احاته یعنی خداوند مطال به همه چیز احاته دارد ول علم, علم به ذات نه اینکه ذات الهی چه همه چیز رو در برگرفته است حالت محیطی و مهاطی ذات با بقیه مخلوقات هست که در اینجا هم باز تصریح هست تصریح هست به اینکه اینها همه چی همه باطل است از وحدت شخصی وجود هم محیط خداست هم مهات خداست و طبعا احاطه وجودی و احاطه ذاتی هم سیدون می که حضرت همه اینها رو با شدت تمام نف می کند لعن الاماکن محدودتون تحویه ها حدود اربعه همه اماکن محدود هستند که حدود اربعه لااغل حدود اربعه فرضی اونها رو دربر می‌گیرد. گیرد کان به ذات لزمه الحوایه اگر خداوند متعال به زاد همه چیز رو با وجود خودش دربر گرفته است لازم است که خداوند متعال هم دربر گرفته شده باشد که ارز کردیم که اگر ما وحدت شخصی وجود رو بپذیریم باید بگوییم که خداوند متعال اصلا مکانی است البته مکانی لایتناها مثلا نهایتش این رو بگوییم چون هر مکانی هم خداست در حالی که همه اینها از جانب وجودات نازنین اهل وید رد شده با صراحت تمام با من خلق احاطه هم احاطه بالعلم هست بالاشراف هست بالقدرت هست لا به ذات که شاید وجود نازنین حضرت این رو در زیل این آیه بیان کرده‌اند که سوالی ایجاد نشود که خداوند متعال در هر نجوایه سه نفره‌ای چهارم نفر هست یعنی خود وجود خداوند متعال مثلا اونها رو در بر گرفته یا خود اونها وجودشون وجود خداست که این حرفا حتی در زیل این آیه هم زده شده احیانا در قول قائلین به وحدت شخصی وجود که اینها هم کاملا رد شده باز در روایت دیگری است که این اصول کافی باب حرکت و انتقال حدیث شماره پنج هست در همین کتاب تاو توحید کافی باز در روایت دیگری که با سند خوب این روایت هم بابو در بابا جوام توحید حدیث شماره پنج آمده که چون حدیث بسیار مفصل است من دیگه به خاطر اختصار از ذکر سند و ذکر کامل حدیث خود داریم میکنم در تیکیه از حدیث آمده از ظاهر البائن خداوند متعال ظاهر است اما باین هست بینونت دارد لا به تراخی مسا مسافتن. البته این بینونت رو هم در نظرتون اینطور نیاد که مثلا یک در تهران هست که در قم هست بینونت مکانی در ذهن نیاد بلکه به تمامه بینونت دارد به وجوده خداوند مطالب بینونت دارد به صفاده بینونت دارد به ذات بینونت دارد که روایات مختلف همه اینها رو بیان کرده خب طبعا خیلی روشن است که طبقه ربنای وحدت شخصی وجود اصلا بینونت تان و مطلق که در این به تام و مطلق بینونت ذکر شده است اصلا بین خلق و خداوند متعال معنا ندارد چگونه بینونت باشد در حالی که اینها هم مخلوقات هم ای از وجود خداوند متعال هستند ورودشون وجودشون وجود خداوند متعال هست و اصلا مبنای وحدت شخصی وجود این رو دارد میگوید نفس رحمانی این رو دارد میگوید بحث تعین اصلا مفادش این است که خداوند متعال وجودش در این قسمت متعین شده است که به عبارات فراوانی ما در این زمینه در ابن عربی و سایر کسان دیگر ما اشاره کردیم در بحث های گذاشته که خیلی روشن است که طبق وحده شخصی وجود اصلا این اونت تام و مطلق هم معنا ندارد که در این روایات کاملا بیان شده با سراحت تام و تمام و هر گونه که در این زمینه شاید بنا که که ها خطور بکنه، روایت نازنین اهل بیت با بیانات مختلف اون رو منتفی کردن و کاملا و با صراحت فرمایش خودشون رو فرمودند. باز دسته سوم روایاتی است که در اون روایات بیان شده که حتی خداوند متعال خلقش در خداوند متعال نیست خداوند متعال هم در خلقش نیست خود ظرفیت هم کاملا منتفی شده محمد ابن یهیان، احمد ابن محمد ابن و محمد ابن حسین ان ابن محبوب که همه اینها جز به هستن ان حماد ابن امر نصیبی که ایشون هم طبقه توانه متعدد، می توانیم استفاده وثاقت رو هم در این شخص بکنیم و هم استفاده صحت حدیث رو بتوانیم بکنیم که بحث های رجالی مفصلی دارد که این جای خودش رو می طلبد ان ابي عبدالله السلام از آقا امام صادق علیه السلام سأل ابو عبدالله علیه السلام ان قل ان هو الله احد از آقا امام صادق در مورد قل هو الله احد سؤال پرسیدم فقال علیه السلام حضرت فرمودند نسبت الله الا خلقه خداوند مطال داره نسبت خودش را با خلقش بیان می که به اینها در معنای احد در معنای سمت خب اشاره شد احدا سمدن ازلیا خداوند مطال احد هست سمد ازلی است همیشه بوده است زمان در او معنا ندارد سمدیان لا له لهو یمسکو سایه ندارد که اون رو مثلا بپوشاند و یمسکو الاشياء بعض اللتها بعض الله اون اشياء اشياء رو گرفته با اون سایه خود اشياء با ظل خود اشياء مشهول بالمجهول عارف هست بالمجهول معروف عند کل جاهل فردانیان لا خلقهو فيه ولا هوفی في خلقه خداوند متعال فرد است، بسیطه است، واحد است در اون مقام الهی هیچ کسی راه ندارد و لا خلقهو فیه خلق خداوند متعال در خداوند متعال نیستن ولا هو فی خلقه و اون هم در خلقش نیست غیر محسوسن ولا محسوسن خداوند متعال محسوس نیست لا تودر که الافصار افصار اون رو درک نمی کند به عالی است در حال اولوش نزدیک است و دنا بعد دور است اما در عین دور دوری خودش نزدیک است یعنی این مکان معنی ندارد که روایات فراوان دیگر عرض شد که بیان شده و انشاءالله باز اشاره می کنیم و فغفر و اتیع فشکر اصیان شده اما غافر است اطاعت شده اما خداوند متعال هم پاداش میدهد لا تحویح عرض ارزش اون رو دربر نمیگیرد و لا لوس سموات و سماواتش آسمانهایش حامل او نگردن حامل الاشیاء به قدرته خداوند متعال با قدرتش اشیاء رو هم کرده دیمومی ازلی لاین ساورای لا الهو هم دائمیست؟ هم ازلیست است همیشه هست همیشه بوده فراموش نمی کند لحظه نمی کند ولا یغلط و غلط از او سر نمیزند ولا یلعب و لان ارادته فصلن برای اراده خداوند متعال هیچ مانعی نیست فصلی نیست و فصله جزاءن و امره واقعن فصل خداوند متعال داوری خداوند متعال پاداش اوست امرش واقع است امره واقعن لم یلد و است نزاییده که به ارث برده شود ارث بذارت ولن یولد فیشارک اون هم همزویده نشده تا اینکه شریکی برای خداوند متعال باشد ولن یکله و کفوان احد هیچ کسی کف خداوند متعال نیست خب طبعا معلوم است که طبق وحدت شخصی وجود حقیقت وحدت شخصی وجود لب وحدت شخصی وجود خلق خداوند متعال در خداوند متعال هستند و خداوند متعال هم در خلقش هست که اصلا اون خلقش همون ورود خداوند متعال هست. باز در دسته چهارم روایات آمده که خداوند متعال با خلقش فاصله دارد، دور از از خلقش. باز روایت دیگری است که این روایت رو مرحوم کلینی نفی کردند و در توحید صدوق هم با اندکی تفاوت دستانت که ایشون از پدر خودشون نقل میکنند این روایت رو نقد کردند که من فقط یک دیکه از اون روایت رو میخونم که حضرت میفرمایند در خطبهی که آقا امیرالمؤمنین فرمودند و خطبه بسیار عجیبی است که خود مرحوم کلینی معلوم است از تفاصیلی و صحبتهایی که در زیل این خطبه میفرمایند این خطبه رو پذیرفتند و حکم به صحت حدیث کردن که به از اجلا هم در این سند قرار دارن عده تو من اصحاب دانه احمد ابن محمد ابن خالد انعی ان احمد ابن الناظر و غیر هی اما ذکره که ذکره رو خود مرحوم شیخ صد در سند خودشون در توحید ذکر کردن ان امر ابن ثابت ان رجلا سماه و از کسی که ایشون نام برده این رو اگرچه که این نام این فرد نیامده اما خب معلوم است که خود مرحوم کلینی حکم به صحت این روایت کردند و این رو پذیرفتند در تیکه ای از این روایت آمده که اللذی نآمن الخلق شیء مثل کسی که دور است از خلق خودش و هیچ چیزی شبیه اون نیست که خب این دور بودن از خلقش میتواند اشاره به این باشد که خداوند متعال هیچ گونه اشتراک وجودی با مخلوقاتش ندارند و اینطور نیست که نه تنها دور بلکه نهایت نزدیکی به این نحوه که اصلا وجود مخلوقات همون وجود خداوند متعال باشد نه اصلا خداوند متعال دور هست نه من الخلق یعنی هیچ نحوه تصوری در این زمینها نداشته باشید که حتی زهره از وجود خداوند متعال در ما باشد باز در این خوب در کافی آمده و در همون کتاب و توحید و آبا و توحید حدیث هفت در همین آدرس در حدیث شماره 4 هم باز نه نا الا به مسافتن دور است اما دوری شما مکانی در نظر نگیرید دسته پنجم هست که در بعضی از جبایت آمر و آمده که خب حضرت میفرماید اصلا شما هیچ چیزی بین خالق و مخلوق اصلا وجود ندارد که ارتباط اینطوری ارتباطی از باب وجودی اینکه یک وجود هستن اینها را تصور نکنید که محمد بن ابی عبدالله ان محمد ابن اسماعیل، ان بعض اصحاب ان، بکر صالح ان، علی صالح انا الحسن بن محمد بن خالد بن يزيد انل ان عبد الحلا ان ابي عبد الله عليه السلام قاله خلا لازم به توضیح هم هست که اینی که در یکی دو تا حدیثی که ما الان در اینجا آوردیم ممکنه که مثلا در سند بعضی از باشند باشن که کاملا معلوم نباشند طبق بحث های رجالی که ما مفصل در این زمینه داریم و اینها بیان شده خب این روایات به نظر حق روایات صحیح هستند و مشکلی از این جهات ندارند مزاقم بر اینکه روایات فراوان دیگری در این زمین ها وارد شده که من فقط میخوام به بعضی از اینها اشارتا ورود پیدا بکنیم که اینشااءالله ع ایزان خودشون این مطالب رو پی بگیرند و بلکه روایات فراوان دیگری و دسته های روایات فراوان دیگری و مزامون دیگری در این زمینه پیدا بکنند. که حضرت می‌فرمائل در مفصل است این روایت هم در اینکه لیس بین الخالق والمخلوق شیء هیچ چیزی بین خالق و مخلوق نیست شما دنبالیک یک اشتراک وجودی چیزی در این زمینه نگردید لا شیء و الله خالق الاشیاء لا من شيء کان خداوند متعال اشیاء رو خلق کرده نه از چیزی که بوده و الله و به اسماعه و الاسماء غیره و خداوند متعال هم با اسماع خودش نامیده میشوند و اسماع خداوند متعال غیر از خداوند متعال هستند و خداوند متعال اینی که اشیاء رو خلق کرده لامن شیء هست از چیزی اونها رو نیافریده خب فکر می کنم تا همینجا وقت به رسیده بسیده الله به بعضی از روایات دیگری که سریع هست در نفی وحدت شخصی وجود انشاءالله در جلسه آینده الله بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.